اعوذ الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعیم فای سفره صحیفه امام سجاد علیه السلام هستیم یک سلوات تردیم به روح متحر ایشون داشته باشیم اللهم صلی محمد و آل محمد دعای ششم رو پی میگیریم از قسمت شماره ده میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم از فی قبضتک یحوینا ملکوچه و سلطانوچ و تزامنا مشیتوچ و نتصرفو ان امرج و نتقلبو فی تدویرج در این فرازها از دعای ششم امام سجاد علیه السلام در مورد خود ما صحبت میکنه اگر دعاهای صحیفه رو ورد سایر دعا رو یه تحلیل ساختاری داشته باشی میبینید که اوایل دعا در مورد خود خداوند متعال صحبت میکنه خدایا تو اینی تو اونی تو این چنانی فرازهای بعدیش معمولا به خود بنده میپردازه ما در چنین شرایطی هستیم الان در اینجا همین شرایط الان داره قشن بیان میشه اصبح نافی قبضتش خدایا ما در قبضه تو صبح کرده ایم این ها رو که میگه تموم میکنه بخش سوم دیگه دعا میشه چه ما الان تو این دعا از فقره سیزدهم دیگه خواهیم خواست از خدا پس ساختار دعا ها رو اگر خواستید فنی کار کنید این سه تا ساختار رو یادتون باشه قسمت اول در مورد خود خدا توضیح میده تو قدیری، تو خوبی، تو همه رو آفریدی و اینها در قسمت دوم ما اینجوری هستیم خدایا ما فقیریم ما در قدرت تو هستیم ما تحت ید تو هستیم ما از روزی تو میخوریم قسمت سوم خدایا حالا اینها رو به ما بده این چیزهایی که میخوایم به ما انایت بکن سه تا ساختار در دعاها از کردم خدمتون حالا الان ما در قسمت دوم هستیم امام سجاد میفرماید که از بهنا فی قبضتش خدایا صبح کرده ایم ولی ما مثل مردم عادی و معمولی نیستیم صبح که میکنیم یاد تو هستیم میگیم در قبضه و در قدرت تو صبح کردیم ما خودمون رو مستقل است نمی نمیبینیم خدایا یه صبح دیگه ما رو زنده کردیم ما بیدار شدیم در دست قدرت تو هستیم قبضه به معنی همون تحت بکومت تحت سلطه خدا یحوینا ملکو و سلطانو چه. ملک و حکومت و سلطان و پادشاهی تو ما رو دربر گرفته ما چه نمیتونیم از این بیرون بیایم. بگیم بله من از حکومت خدا زدم بیرون نمیتونیم لذا هر روز صبح که میکنیم تو پادشاهی تو هستم تو حکومت تو هستم یحوینا ملک و و سلطان رو کرد همین هم اثر اخلاقی داره ها اگر من صبح بیدار میشم میگم خدایا یا در حکومت تو هستم در دست قدرت تو هستم این دیگه جورت نمیکنه گناه کنه میگه در حکومت خدا چه گناهی خدا منو میبینه هر چیزی دارم در دست خدا هست و تزمنا مشیتوچ مشیت و اراده تو ما رو جمع کرده زمینه هم کرده و اگر اراده تو نباشه ما پخش میشیم پراکنده میشیم و نتصرف و امر که تصرف های ما از روی امر توست یعنی تو میخوای که ما این کارا رو انجام میدیم تصرف های ما مستقل نیست از تو برمیاد و من اگه خودم باشم اصلا وجودی ندارم که بتونم تصرفی داشته باشم وجودی ندارم چه قدرتی در پیش داشته باشم ببینید چقدر قشنگ میسازه دعا خداشناسیه خودشناسیه ارتباط با خدا رو یاد میده جنجینه سنصافن این دعاهای امام سجاد اینا رو همش رو همینجوری مجانی در اختیار ما قرار داده فقط باید بخونیم و نتقلب و فی تدبیره چه تصرفهای ما نتقلب و یعنی تقلب میکنیم آ رحیمی تقلب تو امتحان نه این تقلب یعنی یا تصرفاتمون رو انجام میدیم یا رفت آمد داریم نتقلبو فی تدبیره که هر کاری میکنیم تدبیر توست از محدوده تدبیر تو خارج نیستیم یعنی هر کار انجام میدم این تدبیر توه خودم هیچم ببین اینا رو بگیریم روح حرف امام دینه من خودم هیچم هیچی ندارم اینجوری صبح کردم هرچی هست توی لَيْسَلْلَنَا حالا اینجا دیگه تصریح میکنه لَيْسَلْلَنَا من الامر الا ما قَزَيْتَ برای ما از امور چی هست چه کار برای خودمون میتونیم انجام بدیم هیچی الا ما قضایتم مگر آنچه تو بر ما قضا کنی حجم کنی اون بر ما هست اگر تو حجم نکنی من هیچ کاری برای خودم نمیتونم انجام بدم. میخوام برای خودم یه خیلی برسونم میخوام پولی به دست بیارم میخوام یه وامی بگیرم میخوام یه خونه بخرم میخوام بچم رو براش زن بگیرم میخوام به یه موفقیت های برسم اگر خدا بخواد میاد اگر خدا نخواد لَيْسَ الا ما غزقت ولا من الخير الا ما اعطيت ما هیچ خیری برامون نیست مگر اونی که تو به ما میبخشی و عطا میکنی هر خیری به شما میرسد بگو خدایا اینو تو دادی همون صبح که بیدار میشی دعای صبح دیگه خدایا امروز هر خیری به من برسد از جانب توست از بخشش توست خب حالا اینا رو انسان سازیش رو ببینید اگر خیلی از خدا به من رسید من بدونم که این رو از خدا دارم میرم بگم خب خدایا من میرم علیه تو خود گناه کنم برگردم میتونم بگم بعدی که بی‌انصافی است نامردی است اینجوری انسان ساز هستین دعاها و هازا یومون حادثون جدیدون اینم یه روز جدیدیه که الان حادث شده و به وجود اومده یه روز جدید بینیم و هوا علینا از قشنگترین تعبیراتی هستش که تو دعای سعیفه از این تیچهی چه میخوام بخونم جای احمدی میگه که این روز رو مثل یه انسان تصور کرده میگه این روز چه الان یه روز جدیدی حادث شده مثل یک شاهد حاضر زنده داره منو نگاه بیکنه و هوا علینا شاهدون عتیدون یه شاهد حاضر است ان احسنا اگر تو این روز چه روز هم ما رو داره شهادت میده دیگه ما رو نگاه میکنه اگر در این روز احسان کنیم کارای خوب انجام بدیم و دعانا به حمدت چقدر جمله قشنگه آخر روز این روز با ما با حمد و سپاس خدا حافظی خواهد کرد ما را تودیع خواهد کرد چقدر استاره زیبایی از جهت بلاغی و این از اگر تو این روز کارهای بد انجام بدیم فارغنا به زم با مزمت کردن ما از ما جدا خواهد شد خواهد گفت که این بنده چه بنده بدیست در این روز کار بد انجام داد ما رو مزمت خواهد کرد انشالله که این معارف زیبای امام سجاد علیه السلام مورد توجه انسان ها قرار بگیره یه خود متوجه بشن به این کلمات نورانی که هست یه نفر میگفت به یه دانشبند مسیحی یا سنی او یا مسیحی تردید از منه یه هدیه میخواستم بدم صحیفه رو دادم ترجمه میگفت چند روز بعد من دید گفت این چیه زندگی منو متحول کرده من این رو خوندم این چیه گفتم این دعاهای امام چهارم ماست این مسیحی میاد متحول میشه ما شایسته نیست قافل باشیم انشالله وارد این دعا بشیم و بخونیم از این زیبایی ها بهرمند بشیم از این معارف بهرمند بشیم و عمل کنیم امام سجاد هم انشالله شفیع ما باشن به بلکت سلواتی بر محمد و عالم الله اللهم و سلواتی بر محمد و عالم قبول انشالله سلامت باشید <سلامت> <سلامت> <سلامت>